اگر خلافت حضرت علی مورد نظر پیامبر بود چرا رسول خدا صریحاً ایشان را معرفی نکرده تا این همه اختلاف بین امت به وجود نیاید الحمدلله حدیث های زیادی که صریحاً خلافت بلافصل را حق علی می‌داند در کتاب‌های شما زیاد یافت می‌شود ولی از این نکته قافل نباشی که در کنایه گفتن لطایفی است که در سراحت نیست اگر امکان دارد بعضی از احادیث را که تسریب امر بدایت حضرت علی دارد بیان کنید زیرا ما مکدر شنیدیم که هیچ حدیثی درباره خلافت بعد از خودشان وجود ندارد یکی از این احادیث روایت یومودار است علمای شما گفتند بعد از نزول آیه ون زر کل کلعربین پیامبر خیشان خود را دعوت کرد و طعام نیز تهیه کرده بود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 ابراهیم ابن خالد نقل می کند که رسول خدا به امویش فرمود ای امو به راستی که خدا ابو را خلیفه من قرار داد از او فرمان ببرید تا رستگار شوید. این حدیث کاملا مردود است چگونه مردود است؟ شما همه مطالب را می با حرف درست کنید اشتباه نکنید ما اهل حرف نیستیم علمای خودتان احادیث ابراهیم ابن خالد را غیر معتبر می دانند. ابو کرده جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت خدا تو را سلام می رساند و می من از ابو راضی هستم. تو از او بپرس که آیا او هم از من راضی هست یا نه؟ بدهیست که خدا بر تمام احوالات آدمی آگاه است و هیچ چیز از او مخفی نیست. چگونه میشه شود خداوند نداند که آیا ابوبکر از او رازیست یا نه متاسفانه این حدیث هم از جعلیاتی است که توسط ابوهریره ساخته و پرداخته شده حتما میدانید که ابوهریره به خاطر متاع دنیا و به دستور معاویه احادیثی را علی علیه, علیه السلام جعل می‌کرده و راه را برای لعن و نفرین آن حضرت آماده می‌کرده آقای عزیز چرا به اصحاب رسول خدا تهمت میزنید؟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 اگر ابوبکر در میان قوم باشد، سزاوار نیست کسی بر او مقدم شود. برای شما بسیار متاسفم که هر خبری را بدون فکر میپذیرید اگر این حدیث جعلی نیست، پس را پیامبر خدا با وجود ابوبکر، حضرت علی را بر او مقدم شمارد. در کجا رسول خدا علی کرم الله وجهه را بر ابوبکر مقدم داشته در بسیاری از مواقع. به عنوان مثال در غزوه تبوک. در امر وسایت در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 و ما حدیث معروف دیگر که به حدیث تیر مشوی شهرت دارد و نزد شیعه و سنیم معتبر است به طریق دیگر اثبات می کند که محبوب ترین افراد نزد خدا و رسول علی علیه السلام است. استدعا دارم حدیث تیر مشوی را برای ما بیان فرمایید. برای رسول خدا مرغ بریانی هدیه آورده شد. حضرت قبل از خوردن آن دست به دعا برداشته و به خدا عرض کرد. پروردگار محبوب ترین خلق خودت را نزد من بفرست تا با من هم قضا شود. انست که ناقل این جریان و خدمتکار پیامبر بوده میگوید، پس از مدتی علی در خانه را به صدا درآورد. من او را نپذیرفتم و عذر آوردم تا شاید یکی از قبیله خودم بیاید و صاحب این امتیاز شود. دوباره در خانه کوبیده شد و دیدم علی است. پس از مرتبه سوم رسول خدا به من امر فرمود در را باز کنم علی وارد شد و با رسول خدا هم غذا شد این حدیثی است که هیچ کس نمیتواند در سند آن شک کند فکر می کنم شما تصمیم گرفتید که تمام آنچه را ما می گوییم رد کنید از عالمی مثل شما تعجب می کنم که در حضور این همه شاهد و بعد از چندین جلسه که با هم بودیم چون نسبتی را به من بدهید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 اما دقت داشته باشید که معنای قرآن را باید از اهل قرآن که رسول الله و اهل بیت ایشان هستند پرسید. آیه 29 سوره فتح می‌فرماید: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار هما و, و, و بینهم تراهم رکعا نسجدا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود این آیه برتری بکر رو طریقه خلفای راشدین رو تایید میکنه و صریحا علی کرم الله وجهه رو خلیفه چهارم معرفی میکنه این نتیجه گیری ها رو از کجای این آیه به دست آوردید توجه بفرمایید در این آیه مراد از الذین معه یا یعنی خلیفه بکر است منظور از اشداء علی الكفار عمر ابن خطاب است زیرا او بود که همواره با کفار با شدت برخورد میکرد و مراد از روهما و بینهم خلیفه رحمدل و مهربانمان عثمان است و بالاخره در رتبه چهارم علی است که مستاق سیماهم فی وجوههم هم من اثر سجود است. امیدوارم با این دلیل قاطع اقرار کنید که حق با ماست. این تفسیری که شما فرمودید صفر یک کار زوقی بیپایه و اساس است.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 فقد نسره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما ف الفار إذ يقولو لصاحبه لا تهزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وعیده بجنود لم تروها این يه در شأن أبوبكر و نشان دهند برتری او بر تمامی خلایق است زیرا او طرف صحبت پیامبر بوده و علت این مصاحبت هم این بوده که چون رسول خدا میدانست خلیفه بعد از او ابوبکر است پس برای حفظ جانش او را به قار بود اولا اگر علت همراهی ابوبکر علم پیامبر به اینکه او خلیفهش است بوده باید هر چهار خلیفهش را با خود میبرد نه اینکه خلیفه چهارم خود را در جریان لیلت المبيت در معرض قصد قرار دهد ثانیا به شهادت تاریخ ابوبکر به صورت اتفاقی با پیامبر همراه شد در کجا چنین چیز ادعا شده طبری در تاریخ خود نقل کرده که ابوبکر از جریان هجرت رسول خدا خبر نداشت هنگامی که نزد علی رفت و سراغ پیامبر را از آن حضرت گرفت امیرالمومنین جریان را به وی فرمود ابوبکر با عجله خود را به پیامبر رساند و با ایشان همراه شد نکته جالبتر این که برخی از علمای شما نوشتند پیامبر اسلام از ترس اینکه مبادا ابو بکر محل اختفای ایشان را دهد او را با خود برد. در اینجا سؤالی مطرس است این که اصلا چرا شما برای اثبات خلافت ابو بکر به این آیه استناد کردید؟ شرافت ابو با توجه به اینکه خداوند او را مساحب رسول الله نامیده است،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 قضیه ابلیس و بلعم و برسیس های عابد را یادآوری میکنم. بکنم از حضرت حالی بعید است که مسئله ابلیس و بلعم را در این مورد بیا برید. من در ابتدا عرض کردم که در مسئله مناقشه نیست آیا نزول سکینه بر ابو نیست شرافت نیست؟ نزول سکینه بر ابو نبوده بلکه بر پیامبر اکرم بوده دلیل ما بر این مسئله ادامه آیه شریفه است خب بلاخره ابو بکرم نبوده لازمه ادعای ای شما این است که زمایر به کار رفته در آیه به صورت تصنیه آورده شود. در حالی که تمام زمایر مفرد است. پس چاره ای نمی ماند جز اقرار به اینکه که سکینه فقط بر پیامبر نازل شده است. رسول خدا احتیاجی به سکینه نداشته است. این حرف شما باطل است. احدی از خلایق بینیاز از التاف الهی نیست.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 راویان اخبار به احادیث گفتند که ابوبکر محزون، خائف و مضطرب بود. این نکته را در کنار آیه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم تا مطالب زیادی آیه شود. شب از نیمه گذشته بود که جلسه خاتمه یافت. از میهمانان به مناسبت بعثت به پیامبر صلی الله علیه به صرف شیرینی و شربت پذیرایی شد یا مولانا صلی نذُو سيدي و نرجو رضانا أملا نامين كما اغفيره من كما حامته سيدي إلى متكون لنا فما يغفر الذنوب وللعصات مال فحاشاك ما تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بذيع السماء نار تاج ياي ما الله بعد الله الله الله يا فبدنيايا واخرتي الله يا رسول الله خذ يدي الله فبدنيايا واخرتي الله يا رسول الله خذ يدي خذ يدي خذ يدي يا حبيبي ايذا وعلينا زادت المنه الله دخلنا روضات الجنة وعلينا زادت المنه الله دخلنا روضات الجنة الجنة الجنة يا حبيبي يا وعلينا زادات المنّا دخل روضات الجنّا وعلينا زادات المنّا دخل روضات الجنّا وعلينا زادات المنّا دخلنا روضات الجنة وعلينا زادات منه الله. دخلنا روضات الجنة, الجنة الجنة الجنة يا حبيبي يا إيمان ما يبدلنا العسر يسر الله. إِلَكَ يَا أَبَا الزَّهْرَاءَ مَا يُبْدِلُنَا الْعُسْرَ يُسْرَا اللَّه إِلَكَ يَا أَبَا الزَّهْرَاءَ أَبَا الزَّهْرَاءَ أَبَا الزَّهْرَاءَ يَا حَبِيبِي مَا يُبْدِلُنَا يَا نُنَالُ الْعُسْرَى يُسْرَاءَ إِلَّكَ يَا أَبَ الزَّهْرَ مَا يُبْدِنُنَا الْعُسْرَى يُسْرَاءَ إِلَيْكَ يَا أَبَ مَا يُبْدِنُنَا الْعُسْرَى